مصنوی معنوی مولوی برنامه هشتاد و یکم دادخواستن پشه از باد به حضرت سلیمان علیه السلام پشه آمد از حدیقه و از گیاه و از سلیمان گشت پشه داد کی سلیمان معدلت می گستری بر شیاطین و آدمی زاد و پری مرغ و ماهی در پناه عدل توست کیستان گمگشته کش فضلت نجاست داد دهما را که بس زاریم ما بینصیب از باغ و گلزاریم ما مشکلات هر ضعیف از تو حل پشه باشد در ضعیفی خود مسل شهره ما در زعف و اشکسته پری شهره تو در لطف و مسکین پروری ای تو در اطباق قدرت منتهی منتهی ما در کمی و بیرهی داده ما را از این غم کن جدا دست گیره دست تو دست خدا پس سلیمان گفت ای انصاف جو داد و انصاف از که می خواهی بگو کیستان ظالم که از باد و برود ظلم کردست تو، خراشیده است رود. ای عجب در اهد ما ظالم کجاست؟ کونه در حبس و در زنجیر ماست. چونکه ما زادیم ظلمان روز مرد. پس به عهد ما که ظلم پیش برد؟ چون برآمد نور ظلمت نیست شد. ظلم را ظلمت بود، اصل و ازاد نک کسب و خدمت می کنند دیگران بسته به اسفادند و بند اصل ظلم ظالمان از دیو بود دیو در بند است استم چون نمود ملک زان داده است ما را کنفکان تا ننالد خلق سوی آسمان تا به بالا بر نیاید دودها تا نگردد مزدرب چرخ و سها تا نلرزد ارش از ناله یتیم تا نگردد از ستم جان سقیم زان نهادیم از ممالک مذهب تا نیاید بر فلک ها یاربی منگره مظلوم سوی آسمان که آسمانی شاه داری در زمان گفت پشه داد من از دست باد کو دو دست ظلم بر ما برگشاد ما ز ظلم او تنگی اندریم با لب بسته از او خون می خوریم. امر کردن سلیمان علیه السلام پشای متظلم را به احزار خسم به دیوان حکم. پس سلیمان گفت ای با آدوی، امر حق باید که از جان بشنوی حق به من گفته است هان ایداد ور مشنو از خسم تو بخسم دگر تا نیاید هر دو خسم اندر حضور حق نیاید پیش حاکم در ظهور خسم تنها گر برارد صد نفیر هان و هن بی خسم قول او مگیر من نیارم روز فرمان تافتن خسم خود را رو بیاور سوی من گفت قول توست برهان و درست خسم من باد و او در حکم توست بانگ زد آن شه که ای باد سبا پشه افغان کرد از ظلمت بیا هین مقابل شو تو و خسمو بگو پاسخ و بکن دفع عدو باد چون بشنید آمد تیز تیز پشه بگرفت آن زمان راه گریز پس سلیمان گفت ای پشه کجا باش تا بر هر دورانم من قضا گفت ای شه مرگ من از بود اوست خود سیاه این روز من از دود اوست او چو آمد من کجا یابم قرار کو بر از نهاد من دمار همچنین جویای درگاه خدا چون خدا آمد شود جوینده لا گرچه آن وصلت بقا اندر بقاست لیک زوال آن بقا اندر فناست سایه های که بود جویای نور نیست گردد چون کند نورش ظهور عقل که ایماند چو باشد سرده او کلوشه این حالک الا بچه هو حالک آید پیش وجهش هست و نیست هستی اندر نیستی خود ترفه است اندر این محضر خردها شد زده است، چون قلم اینجا رسیده شد، شکست. نواختن معشوق آشق بیهوش را تا بهوش باز آید. می کشید از بیهوشیش در بیان، اندک اندک از کرم صدر جهان. بانگ زد در گوش او شه کی گدا، زرن سارا آوردمد دامن گشا، جان تو کندر فراقم می تپید، چون که زنهارش رسیدم، چون رمید. ای بدیده در فراقم گرم و سرد با خدا از بیخودی و بازگرد مرغ خانه اشتری را بی خرد رسم مهمانش به خانه می برد چون به خانه مرغ اشتر پانهاد خانه ویران ایران گشت و سقف اندر فتاد خانه مرغ است هوش و عقل ما هوش صالح طالب ناقه خدا ناقه چون سر کرد در آب و گلش نه گل جاماند، ماند نه جان و دلش کرد فضل عشق انسان را فزول، زین فزونجویی ظلوم است و جهول جاهل است و ان در این مشکل شکار میکشد خرگوش شیری در کنار کی کنار اندر کشیدی شیر را گر بدانستی و دیدی شیر را ظالم است او بر خود و بر جان خود ظلم بین که از عادل ها گومه برد جهل او مر علم ها را اوستاد. ظلم او مر عدل ها را شد رشاد. دست او بگرفت که این رفتد دمش آنگه آید که من دم بخشمش. چون به من زنده شود این مردتن جان من باشد که رو آرد به من. من کنم او را از این جان محتشم. جان که من بخشم ببیند بخششم. جان نامحرم نبیند روی دوست. جز همان جان کسل او از کوی اوست. دردمم قصاب وار این دوست را تا هلد آن مغز نغزش پوست را گفت ای جان رمیده از بلا وصل ما را درگشادیم از سلا ای خود ما بی خودی و مستیت. ای عیزه هست ما همارا هستیت با تو بی لب این زمان من نو بنو رازهای که نگویم می زان که آن لبها از این دم می رمد بر لب جوی نهان بر می دمد گوش بیگوشی در این دم برگشا بهر راز یفعل الله ما مایشا چون صلای وصل بشنیدن گرفت اندکاندک مرده جنبیدن گرفت نی کم از خاک است که اشبه سبا سبز پوشد، سر از فنا. کمز آب نطفه نبود که از خطاب یوسفان زایند. رخ چون آفتاب کمز باد نیست شد از امرکن در رحم طاووس و مرغ خوشسخون. کمز کوه سنگ نبود کز ولاد ناقه کن ناقه ناقه زاد زاد زین همه بگذر نه آن مای ما ادم آلم زاد و بزاید دم بدم برجهید و برتپید و شاد شاد یک دو چرخ زد سجودندر فتاد با خویش آمدن آشق بیهوش و روی آوردن به سنا و شکر معشوق گفت ای انقای حق جان را متاف، شکر که باز آمدی، زنکوی قاف. ای سرافیل قیامتگاه عشق، ای تو عشق عشق و ای دلخواه عشق. اولین خلعت که خواهی دادنم، گوش خواهم که نهی بر روزنم. گرچه میدانی به صفوت حال من، بنده پرور گوش کن اقوال من صد هزاران بار ای سطر فرید زار گوش تو هوشم پرید آن سمئی تو وان ازغای تو وان تبسم های جان افزای تو آن نیوشیدن کم مرا عشوه جان بدندیش مرا قلب های من که آن معلوم توست بس پذیرفتی تو چون نقد درست بحر گستاخی شوخ غره هلم ها در پیش هلمت زره ها. اولاً بشنو که چون ماندم زشست اول و آخر ز پیش من بجاست. سانین بشنو تو ای صدر و دود که بس جستم تو را سانی نبود ثالثا تا از تو بیرون رفتم گویی یا سالس سلاسه گفتم رابن چون سوخت ما را مزرعه می ندانم خامسه از رابعه هر کجا یابی تو خون بر خاکها پیبری باشد یقین از چشم ما گفت من رادست و این بانگ و هنین ضبر خواهد تا ببارد بر زمین من میان گفت و گیریه میتنم یا بگویم یا بگیریم چون کنم گر بگویم فوت میگردد بکا ور بگیریم چون کنم شکر و سنا میفتت از دیده خون دل شها بین چی افتاده است از دیده مرا این بگفت و گریه در شد آن نهیف که برو بگریست هم دون هم شریف از دلش چندان برامدهای هوی حلقه کرد اهل بخارا گرد اوی خیرگویان، خیرگیریان، خیرخند مرد و زن خرد و کلان حیران شدند شهر هم همرنگ او شد عشق ریز مرد و زن در هم شده چون راست خیز آسمان می گفت آندم با زمین اگر قیامت را ندیدستی ببین عقل حیران که چه عشق است و چه حال تا فراق او عجبتر یا و سال. چرخ برخانده قیامت نامه را تا مجره بردریده جامه را با دو عالم عشق را بیگانگی، اندرو هفتاد و دو دیوانگی، سخت پنهان است و پیدا حیرتش، جان سلطانان جان در حسرتش، غیر هفتاد دو ملت کیش او، تخت شاهان تخت بند پیش او. مطرب عشق این زند وقت سما بندگی بند و خداوندی سدا پس چه باشد عشق دریای آدم، در شکست عقل را آنجا قدم بندگی و سلطنت معلوم شد زیند و پرده آشقی مکتوم شد، کاش که هستی زبان داشته، تازه هستان پرده ها برداشته، هرچی گویی دم هستی از آن پرده دیگر برو بستی بدان، آفت ادراک آن قال است و حال، خون خون شستن محال است و محال من چو با سوداییانش محرمم روز شب اندر قفص در میدمم سخت مست و بی خود و آشفتهی دوش ای جان چه پهلو خفتهی هان و هان دار برناری دمه اولا برجه طلب کن محرمه آشق و مستی و بکشاده زبان الله الله بر برناودان چون زراز و ناز او گوید زبان یا جمیل سطر خاند آسمان سطر چه؟ در پشم و پنبه آذر است تا همی پوشیش او پیداتر است چون بکوشم تا سرش پنهان کنم سر برارد چون عالم کینک منم رغم انفم گیردم او هر دو گوش که مدم مغ چونش می پوشی. بپوش گویامش را گرچه چه بر همچو جان پیدایی و پوشیدهی گویا محبوس خون بست این تنم چون می اندر بزم خون بک می زنم که گردی گراو تا نیاید آفت مستی براو. گوید از جام لطیف آشام من، یار روزم تا نماز شام من. چون بیاید شام و دزدد جام من، گویم اش که نامد شام من. زان عرب بنهاد نام مدام. زان که سیری نیست می خور را مدام عشق جوشد باده تحقیق را او بود ساقی نهان صدیق را چون بجویی توبه توفیق حسن باده آب جان بود ابریق تن چون به مای می توفیق را وته می بشکند ابریق را حکایت عاشق دراز هجران بسیار امتحانی یک جوان برزن مجنون بود است می ندادش روزگار وصل دست. بس شکنجه کرد عشقش بر زمین خود چرا دارد ز اول عشق کین؟ عشق از اول چرا خونی بود؟ تا گریزد آن که بیرونی بود؟ چون فرستادی رسول پیش زن آن رسول از رشک گشتی راه زن ور بسوی زن نبشتی کاتبش نامه را تصحیف خواندی نایبش. ور سبا را پیک کردی در وفا، از غبار تیره گشتی آن سبا، رق اگر بر پر مرغ دوختی، پر مرغ از تف رقعه سوختی. راههای چاره را غیرت ببست لشکر اندیشه را رایت شکست بود اول مونس غم انتظار آخرش بشکست که هم انتظار گاه گفتی که این بلای بیدواست گاه گفتی نه حیات جان ماست گاه هستیز و برابردی سره گاه او از نیستی خوردی بره چون که وای سرد گشتی این نهاد جوش کردی گرم چشمه اتحاد چونکه که با بیبرگی غربت بساخت برگ بیبرگی به سوی او بتاخت. خوشههای فکرتش بیکاه شد. شب روان را رهنما چون ماه شد. ای بسا توتی گویای خموش. ای بسا شیرین روان روتروش. راو به گورستان دم خاموش نشین آن خموشان سخنگو را ببین لیک اگر یک رنگ بینی خاکشان نیست یکسان حالت چالاکشان شحم و لحم زندگان یکسان بود آن یکی غمگین دگر شادان بود تو چدانی تا ننوشی خالشان زونکه پنهان است بر تو حالشان بشنوی از قال های و را کی ببینی بی حالت صد تو را نقش ما یکسان بزد ها متصف خاک هم یکسان روان روانشان مختلف همچنین یکسان بود آوازها این یکی پردرد و آن پرنازها بانگ اسپان بشنوی اندر مساف بانگ مرغان بشنوی اندر تواف آن یکی از حقد و دیگر زرتباد آن یکی از رنج و دیگر از نشاد هر که دور از حالت ایشان بود پیششان آوازها یکسان بود آن درخت جنبد از زخم تبر و آن درخت دیگر از باد سحر پس غلط گشتم ز دیگ مردریگ زان که سر می جوشید دیگ جوش و نوش هر گوید بیا جوش صدق و جوش تزبیر و ریا گر نداری بوز جان روشناس رو دماغی دست آور بوشناس آن دماغی که آن گلشن تند چشم یعقوبان هم او روشن کند این بگو احوال آن خسته جگر که از بخاری دور ماندیم ای پسر پرنامه های مصنوی معنوی مولوی را مینوکتاش و شهباز ایرج تهیه و اجرا کردند.